دو ماهی لپاره سوشست خوینر که آتا پیموه به تو ده توید گیتر یا خود پرتی سیم دب مزرینید چون که تو نمیان روی نپرگیری شید گندی تو به حال من هرگز بیرم لده مزرندنی پرتی سیم نکردو توا چون که ایم همومن به همه شو بیر کینوا میان روانیش دیسان روانگیم با پرسکان جیوازا. گروپ ایک که تاکه امنجی خزمت کردن بین چون ده توانه پیوندی با پرتکی دیاری کرواب کد. من دم هاوید هاوکات خزمتی پرگیرن و میان روانیش بکم. که تاکه که لسر پرسکی دیاری کرو لگالیانده دکو منکو کشوا روانگی خومیان پیش چاو دخمو لسر روگی خزمت بردوام دبم. خوینر ادید توانی چی به هوا دارانی دو پرتک بلید؟ گندی با پرگیران دالیم من دزانم ایوه سر بخویی هنتان گرکا بالم او کارا تنها بد خوازی جه بجنابید بالکو پیویسته لسر همو تاکیگ بجداری تیادب کد اوشتی که خلکانی تر پی منی دو بخشید نشه لنمو بولاوزیاتر به تو نشتی منی نبید هر بویا هر هنده بزنیا که انگلیس بکند دروا، بو آویس سر با خویده اسپین. پشان و تاکنی سر با خویم شروع کرد. هروا سر به خویی نتوند به هزیچک دستبرب کرد. چون که هزید رندانه بس سروشی هندی کن نموع. بلکو هندی کن به ویستل سریان تنها خویم به هزی راهی پرچک بکن. هروا هرگز برو تان و نباد که زبروزنگ. له هر قوناغې دا وبوګېشتن به امانځي خوازرو د بیت 22 د میان رواني اشتلم برخه له سټیګرنو ناراضي دربرین چی ترنیه جګله کړدی کی ناکوک بیا سو لاوازیر رحیمان د سلمینید بروابون به وشک د صلات بریتانیا له هند پیويستا مانین کولې لبونی خدا چونکه تنها هر خدا پیويستا سر رای اوه، اقل دروستی اوه من بسرده دسا پیند، واز لختو کدانی گمرایی انگلیز بهینی نو، پیان نلین هشتا منوطان لحند پیویستا. اگر انگلیز اکان داز لحند حال بگرنو بگرنو بگرنو با اولاتی خوین، هندوکی او بیوجنا شیوان ناکد که مرتکی مردوها. رنگ لپاش روشتنی انگلیز او خلکانه بگج یک دابچن، که انگلیز ناچر با پیک و جیانی کردون. بلام هیچ بهانه اگنیه بار اگر لرودانی تقینه ویگ که بواری پی بدرد رو بدد. هر بای اگر تنها لپش نکوکی او جاتوانی من اشتی که همیشهی بر کمال بگین دواب که وینا نکوکیوا. پیویست پرتی سیمیش دب مزرینین با پرست نیم او او پر اسنه کبل اوستر کردنی مرو فلاوازکن ایمی لا واسکردوا حدا لمشتانج هر بنا حالب منی نوا نتوان سر بخوین هر وه د موید گوت یک کلیپیاونی اینی انګلیز راو بکم کدالیت سر بخوی هوشانی پاشا گردانی لدا صلات بیگانە باشرا بالام او تایک اوپیا وبسر بخوی هندی داد. لوا تاي سر بخوي تاو جاوازه کمن مبست ما. پیوسته اما خو من او فیر ببینو خلقی تریش فیری اما بکین. اما هشتم گراه یک من گرگنیا که سایکی بريطانی یا خود یا سایکی هندی پارزگاری لبگاد. گربتوان رد او بیرو که یا بهین رد دی او دما پر گیران میان روان دز و دستی یک دیدانین. چون که ای دی للاعانی هش کم لدولانکه و هیچ بحانه ایگ با سل کردنوا یا خود رقوقین نمیند. خیلی نر. ادی چی به انگلیز دالید؟ گیندی. با پاری نوازشو پیاندالم مندن بودادنم که ایو فرمان راییم دکنو بهوده لوبریا مشتومر بکین که داخو ایو بزوری چک یان بویار متی که منیار متی مداون هنتر جیر دست من بر حال استی من و تن نکم لنه ولات کم دع. بالامقدی دسلط بدست آوریا تنها و کی خدمت کریم لد دتوانن بمن نوا. چونکه او ایمانی کپیست آرز و کتن جاب جاب کن. بالکو او پیست لسرتن ملبویستی امبدن. دشتوانن آسا منببن با خوتن کل کی منش نیتان تو. بلام راجعان پیدا دم لسر حل نوشینی سروتو سامان برداوم بن. گرو استیشتن دتوانن رجمن لهندابین بکن. بلام پیستا همو بیروکی کی لمرق زنجک کردن لسر حسابی اما لمشکی خودان دربکن. شرستنیکی اما پیچوانی شرستنی تی او او اما شرستنی خم ان زر لشرستنی تی او انحنا الان الخارجBEerez للنصف من دها، فهم مهمه؟ هل OnionSA احدين لانين، او لا يروح سرتان وکی من الانغ�도 يسلطت علىناتها لثالي هذه المسألة التي يمكنك للخواب وحسب هذا التائه بموضوع horror لحظة الم history. Her Bruhanna بيت States to work like and Jameden على استطيع ن�� من دفعات أن الولد الأيين яتكي boards Luther وکه رزلنانیک لهند وسکن گوشت مانګه نه خونه وکه رزلنانیک کیجله مسلمانان کان گوشت به راز نه خون ته استا لیبرترس نو کی من بیدنگ دنګ بوینو قسممن نه کردوا بلم بزانن بزنن رفتارکان تنقلترین هستکان من برین دردکن دکن امه به کاریګری خو پرستی یا خود ترز بیرو راکانی خو منتن لا ندرکنین بل کولا هاتو چیتر تر ارکی سرشان مانه بودر برینی اوی که در مانوید دنگ من برس هر و ها ایم قتاب خانو یا سور سکه تن ببیسود دزانینو در مانوید قتاب خانو یا ساگلی خومن بجینی زمانی هندیش، زمانی انگلیزینیا، بلکو زمانی هندستانیا، هر بای پویسته لسرتن او بزنن. نش منوید به زمانی کیتری جگل زمانی من لگلتن بدوین. هر ایمه قایل نبین سامان من بورا کشانی هیلا نکن و خرجی هیز سربازی کن بفی لبر اوی ایمه او بپیویز نازانین. رنگ ایمه لروسکان بترسن. بلام ایمه نخیر نترسین. که تک کهین ایمه خو من مشوری اندخوین. اگر تا او دما ایمه لولات من دا ما بون او پیک او پیشوازی اندکین. ایمه نمانوی کتالدگ بکار بهینین. که لأوروپا درست گرابید بلکو ده منوید او کتال نشتیمانیه به بهینین که به تایبت خو من درستیدکین هرواها ای و نتوانن مروف یک لما شسترو یکی که دیگه لهم تنها تنهاکت دتوانن دتوانین پیکا و کربکین که برشواندیکن من یک بگرنوا من ام قصانتان لسانگی فیزو لخوابایی بونو بونکم ای و خواونی توان اگلی سربازی به شمارنو ګر چې ګلکان ته به وته اگر به منه بچی خوته ل دشتام بجنګین تو اني او من نه بیت بلم اگر به مرجانې قایله وون او دزلن ون دنی رول حکم بسردا کرا و هلد گرین یو پیشیل تو ان په ممکنو به بمبکان پرچه پرچه ممکن اگر به په ویستی امو رفت بکن او کارکتان دا د زګیرویت نکینو به امرژناتوانن هنگاوک پیش رویبکن. رنگ مستی ده سالاتواتن لیبکت پیکنین تن بو قسانم بید. کمنده کم. کم. حال بد ایمناتوانین به یک جار گرتی خیالکان تن بدهیم بدن باوا. بالم اگر پیچیک آبرو من تیده هبید، اوه بینین، دبینین او مستیانتن برو و تن دباتو قاقای پیکنین تن با قسکان من زاده خیال امالنا خی دلمانه و آوات خوازیم بگرینه و بو آمیسی گلی کی آیندار. چون که ولاتا کمن کنگای آینکانه. اوی ای کرینگ اوانیا کبوچی ایم پیکا و لیرین. بلکو گرنگ گرتنا لو ها هاو بشمن بو هاو کاری کردن لپیناوی آمن جگده. اوانی کل اینگل و هاتون نشته جبون لهند، نونرانی راستقینی گلی انگلیز دین. هر وها او هندیا نج نونراتی گلی که بونه تا انگلیزی. گرگلی انگلیز لو کردوانه با آگه بوایا که ایوه لحنده دیگن بر حالستی زوریگ لکردوکان تانی دکرد. گلی هند تنها کمیک پیواندی لگلتان دا هیا. گرپتانوه دست لبن او شارستان کشتان حال بگرنو حوشیارانه. کتیبه پیروزکان تان بخون نوا او دمت زانن که همو دا خوازی من دا گلی بجین. منوطن لحند بنده بجه بجه کردنی همو او خواستانوا. اگر بجمن نوا، او زرشت من فرده کنو، اوش للاین خودانوا زرشت فرده بند. لمکارش دا خیری با امو با او با جیهانشتیه دایا. بلام اوطن ها سر وقتک میسر دوید که پیوندیکانی نیوان من لسر بناغ گلیکی دب مزرینین. خنر ادی چی به ملت گاندی ملت کیا؟ خنر ملت اوانن که بدریجایی کفتوگا که من مبست من بون اوانی که شرستانیتی اوروپی جیانی لطال کردونو تام از روی گاندی که واتب پیان دلم تنها او کسانی که خوشویستی لنو دلی انده هیا دتوانن ببیسل کردنو بادنگی او بدن بگوی انگلیز دا که پیشن اماجن با کرد. با اوی با وقایل بکرین که هندی شهرستانیتی کی بالاترو شهرستانیتی اوروبی چی ترنیا جگل اگری پالاشو وکی زور بی او شهرستانیتانی دی که که او هبون براو لناو چونده چید. تنها او کسانی که هزی روح لنا خیانده نشونو مای کردوا لبردم هزی درندانه دا دا چمه نوو لبکرهنانی سلده کنوو. اوانه تالاوی پیکی جاری شرستانه تی نوی انوشی وو بدز با رودوخی هنوکوا ازار زردچه اگر تاکه هندیه که یا او تایبن مندیانه بسر داب بدات بابا دنگی برز او انگلیز دا که باسم کرد او دمبوی دردکوه که اوان او ناتشار دبن گوی بارا دیرن. اوی گوتم ارزو حال نیا، بلکو گزارشتا لدو خی درونی من، چونکه که ایما نک هر بداو کردنی پتی، بلکو بسندن او دزدخین که دمانوید. با انجامدانی او کرر، چالکی کی زور پیویستا، هر باید بود با بود جوری لیخوارا و حالسو کتب کد. کت. یک تنها لکاتی او پاری زمانی انگلیزی بکر بهینید. دو، گر لیا ساناسم بو باوست لپیشه که بهینه و فیری چنینی دستی بید. سه، اگر لیا ساناسم بو زانینه که بر لینگلیز و روشن کردنی گلکه بکر چوار، گر لیا ساناسم بو لمشتوم رکان دا بجدارینه که تو پنا بوداد گاکان نباد. بلکو هلی او بو خلقی برخسینه، کسود کانی ور بگرنو داواین لیبکات شوین پی حل بگرن. پینج گر لیا سانا سان بو قیل نبید ببید بقازی. هروها بو نیش بپاری رت بکاتاوا. شش گر پزیشک بو دز لپزیشکی حل بگریو باور باوبهین که پر بروح زور لگرنگیدان بجستا باشترا. حوت، گر پزیشک بو لسر هر آینگ بو در کی بکات که باشتروه نخوش بی وگلوی با هوی تاقی کردن و گلی کی قیزو نوا چاک بیتوا. کل قطاب خانه پزیشککانی اوروپا دا لسر آجالان انجام درون. هش. اگر چی پزیشک فری پیشی چنین بید. گر یک هد بولی های نخوشکی پی بلد. لجیتی اوی درمانی به کلکی بداته؟ اموشگری اوی بکد که پیویست نخوشیه که ریشه کشب چونکه چون که دزگیروی راستقینو که ریچاکی راستقینه اویه. نو تناند اگر دولمندیش بو نبی سامانکی رگای اویلیه بگرید، دلیرانو بی اویل لکه سلب که توا او بچونانه در ببرد که به انده شیدادین. ده اگر دولامند بو سامانکی با کرینی تو نیچنین ترخن بکاتو خلقی با وحان بداد کنمونه اندر باری پیویستی با کرهنانی اوشتانه با پینه توا که به دستی خوی دروز دکرین یانزا وکی هم هندیگ پیویست لسری او بزانید که کتی تو با کردنو لی بردنو رش دوانزا وکی همو هندیگ پیویسته لسری او بزانید که سرکونه کردنی انگلیس کلکینیو ایم خو من لبونین لولاتک من بر پرسیاری نو تنها که تیگو لاتک من جه دهیل نو شوی لمرجیان یاندگارن که ایم خو من پیش بگوین سیانزا پیویسته لسری وک تر او بزانید که لقونه پرسو پجاره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 پیوسته لسری و کسانی تر قوه زنید که کارکردن لقس کردن باشند او ارکیترشانی او بچه و پوشیل انجام میکن لودار رزگوین کبیری لدکین او باورمان وابد که تنها رفتار کیلم جرای درفتی آومن بوده رخ زنید خلقانیت ربوسنا شانزا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 پوسته لسری و کسانی تر او بزانید که هیچ دولتیگ ببی ازار نبیت دولتیگی مزن. هر وحا تناند لدو خی جنگیشده ازازی بریتیا بریتیه لطوانه برگگرتنی ازار نکوشتنی کسانی دیکه. چند شایسته که اوج لبرنگاری نره یانده بید. نوزده پوسته لسری و تر او بزانید که اول نشانه کنی خلیچی و تنبالیه چاروان کردنی که راک بکرید که کسانی تریش دی کن و او که را بکن که براستی دزانین پیوست خلکانی تریش چه لعیم بکن که تک او راستیان بودردکوه و راگان بو هموارده بید سر وقت که ارزوی خواردنی شیرمانی دکم چاروان او ناکم تا خلکانی تر ببینم دی خون که کردنیج لپیناوی ملتو برگگرتنی ا لپی نوی ملت دا پیست دوکی شیرین منی تمشب کرد بلام لگل اگر مروف لجرف شاری درکی دا ازاری چشت مانه اوانی که براستی ازاری چشتو ها خونر تو دیلید پروگرامی که تاو کملا بلام که او بو همون درخصید که جیبه جیبکن گندی حالی تو لبیر کردند و داده لهمون منو تو وکسانی ترنین با هرکز ارکی خود جا بجای کرد. اگر من لخم و دستم پیکردو ارکی خم مجبور جا کرد، آوکاتالت و نم داد باد خدمتی کسانی دیکش بگم. پس آوی جد پیام مالات با خم دادم آو شدنا کرد بگم واه کویستم یک سر با بجلو کردن خود دست بده کد دو لرقای برنگاری نريانا وا واتا لرقای هزی روح یا هزی مهربانی بسر بخوای راده گین سه بو اوی بتوانین او هزبا کر بهینین فوست سر بخوای آبوری لهمور وکانیوا پراکتی زبگین چوار په ویسته برخاطری له بر خاطری بر حال کرنی یا خود لپینوی تولسن نودا بلکوه بهاندری ال کی سر شان کړپ کین بم اگر انګلیز او با ججله برید کله سر خو دی نا وو سامانه کمن بوب کړین و ناوند هستیارکنی کارګری دولت شو پکاتو لشکرو سپاکنی له من بکشین балам эмаҷарик тир барҳамакани ба кар наҳенину басманки надвин 23 та лесарман обзанин ка оштана басрушти хуян зе нахрон ҳалбуя я ман нама навен ман қинм ле инглисния балку ла шаристан такиан бақинам ҳар ваҳа пе мобе эма важи сер ба хуи ба кард хенин би ави бир лота منویست معتاکی با چشنی کتی دیگم شروع ببکم دشتوانم به وجدان که اصو دو بلیم هر لئستا و جیان خوم ترخانی دستبر کردنی او سر بخوی دکم.